طفحه دیویست چهار شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی چناختم. باز هم شنا کردن را ادامه دادم دیگر تا و خود را از دست می دادم و نمی دانستم چگونه خواهم توانست خود را زنده نگه دارم در همین هنگام باد شروع به وزیدن کرد و موج نیرومندی مرا به سوی راند و موج نیرومند دیگری مرا با خود به ساحل کشانید و قبل از آنکه موج ومی مرا به دریا برگرداند، خود را از دسترس موج دور کردم و لباس های خیص و سنگینم را درآوردم، آنها را فشردم و دوباره پوشیدم و روی شنها و ماسته ساحل خوابیدم. صبح روز بعد بیدار شدم و لباس هایم کاملا خشک شده بود و به قصد کاوش در سرزمین ناشناخته راه افتادم. هنوز مقداری راه نرفته بودم که متوجه شدم این منطقه، از جزیره به صورت دشت همواری است و از محلی که من در آن زندگی می کنم فاصله بسیار زیادی دارم ناراحت شدم که با سنبایی دریانوردی کنم در این جزیره درختان و میوه های وحشی یافت می شد که برای سیر کردن شکم سودمند بود زمنن آب آشامیدنی قبارا هم موجود بود ناگهان از دور قایق بزرگ بادبانباری را دیدم که در گوشه لنگر انداخته و چند نفر مرد سیاه پوست از آن پیاده شدند و در حالی که بیل و کلنگ در دست داشتن وارد جزیره شدند و در نقطه‌ای شروع به کندن زمین کردند و زمانی تورانی به این کار مشغول بودند و آن وقت به نظرم رسید که آنها خم شده و را با از زمین بلند می‌کنند بعد هم دوباره به سوی قایق برگشتند و این بار لوازم و اساسی زندگی با خود حمل می‌کردند و همچنین مقادیر آذوقه و خاربار خردنی به آن نقطه بردند و در محلی که دریچه را برداشته بودند به زیر زمین رفتند. من تصورم این بود که با یک در زیر زمین محلی برای سکونت فراهم کرده باشند. یک بار دیگر مشاهده کردم که مردان سیاه پوست از آنجا بیرون آمدند. به سوی قایق رفتند و به زودی به همراه پیرمرد مسنی موسنی که نوجوان چهارده یا پانزده ساله ای را همراهی میکرد به جزیره برگشتند. من از پشت درخت قطوری آنها را می دیدم. جوان بسیار زیبا و آراسته بود و دست در دست آن مرد مسن داشت و همگی آنها از همان دریچه به داخل خانه زیر زمینی رفتند و بعد از مدتی دوباره همهی آنها از آنجا بیرون آمدند ولی این بار جوان با آنها نبود. آنها دریچه را دوباره به جای خود گذاشتند و روی آن را رو با خاک و خاشاک رفتند و سوار کشتی شدند. من از دیدن این منظره در حیرت فرو رفتم همین که قایق بادبان را کشید و به راه افتاد من از پشت درختی که پنهان شده بودم بیرون آمدم به سوی همون دریچه پیش رفتم در اونجا خاق و خاشاک را کنار زدم تقصه سنگی دیدم آن را برداشتم پلکان سنگی نظرم را جرب کرد از پلکان پایین رفتم و در پای آن اتاق وسیعی قرار گرفته بود که با می مفروض شده بود. و بالش های زیبا و گرانبهایی روی هم انباشته بودند و جوان زیبا هم روی آنها نشسته و باد بزنی در دست گرفته بود دوش امومی در آنجا روشن بود و در پرتای آن صورت جوان را دیدم زمنان مقداری میوه و تعدادی هم گلدان پر از گل در کنار او دیده می‌شد. او از دیدن من از جا پرید و شگفصده شد من برای آنکه نگرانی و ترس را از او دور سازم او گفتم ای جوان هر که هستی از من نترس من شاسادی هستم که هرگز به کسی آزار نمی‌رسونم بلکه دست سرنوشت مرا به این نقطه کشانده تا شاید بتوانم خدمتی انجام دهم و شما را از این دخمی زیرزمینی که دست کمی از آرامگاه ندارد رهایی بخشم به نظر میآید که آنها شما را در اینجا زندانی کردند من از بیرون رفته آمد آنها را دیدم و آمادهام که هر کمکی که از دستم برمیآید انجام دهم. جوان که سخنان مرا شنید، آرام گرفت و خوشحال شد و از من تشکر کرد و گفت: «ای ساده آن پیرمردی را که دیدی پدر من است که مرا به اینجا آورده. او بازرگان جواهرات و سنگهای قیمتی است و ثروت بسیار دارد. جواهرات و کالاهای او توسط کشتی های خودش به نقاط مختلفی رفت آمد می‌کنند و اجناس او را می‌فروشند.» پدر من سالها بود که آرزوی فرزند داشت و در حسرت بیفرزندی قصه می‌خورد تا اینکه شبی در خواب به او مژده داده می‌شود که صاحب پسری خواهد شد و خواب او به حقیقت پیوست مادرم باردار شد و مرا به دنیا آورد پدرم که پس از سالها بیفرزندی خوشحال بود که خدا مرا به او داده با ستاره شناسان مشاوره کرد زیرا بسیار به من دلبستگی داشت و می‌خواست در پرورش و آموزش من کوشا باشد چه خبری به پدرم گفتند که پسر تو در سن 15 سالگی خطر زندگی او را تهدید خواهد کرد و احتمال زنده ماندن او در آن سن خیلی ضعیف است ولی چنانچه بخت او یاری کند و بتواند خطر را رد کند آن وقت ممکن است عمر درازی را در پیش داشته باشد و وقتی مجسمه برنزی اسب سوار که در کوه سنگ خارا جای دارد توسط عجیب شاهزادی که پدرش قاسم نام دارد و هست به دریا سرنگون گردد پنجاه روز پس از آن پسر عمرش به پایان خواهد رسید پدرم از پیشگویی آنان بسیار غمگین و افسرده گردید و چون اینک سن من به پانزده سالگی نزدیک شده در این جزیره دور افتاده که پای هیچ انسانی به آن نمیرسد در زیر زمین این محل را برای زیستن من ساختند تا شاید دست کسی به من نرسد و حادثهای ناگوار پیش نیاید تمام این مدت تا پدرم مواظب و مراقب من بود و لحظه ای در دا نگهداری و تربیت منغت نورزی تا اینکه اخیرا فهمید ده روز پیش مجسمه فلزی اسب سوار توسط عجیب فرزند پادشاه به دریا سرنگون شده و مرا به اینجا آورده که از دسترس هر کسی و هر حادثه ای دور باشم. من امیدوار و خوشبینم که شافادده عجیب هرگز به این جزیره دور افتاده و این خانه زیرزمینی پای نخواهد گذاشت در همان هنگامی که پسر جواهرفروش زندگی خود را برای من شرح میداد، من در دل به پیشگویی شناسان و پیشگویان میخندیدم. زیرا آن‌ها پیش‌بینی کرده بودند که من قاتل این پسر جوان بی‌گناه خواهم بود، در حالی که من در تمام عمر در هیچ لحظه‌ای برای کسی بدی نخواستم و همواره در فکر یاری و کمک به دیگران بودم. در این لحظه به آن جوان گفتم: «با بودن من در کنار شما، دیگر خیالتان آسوده باشد.» که از سوی هیچ که به شما وارد نخواهد شد خداوند مرا برای نگهبانی شما فرستاده است و من به این نقطه دور افتاده آمدم تا با دشمنان شما مبارزه کنم و جای تعجب بسیار است که پیش با پیش نادرسته نادرست خود این همه ترس و نگرانی در دل شما راه دادند من تا دا پایان چهلومین روز در نزد شما هستم و بعد از آن به اتفاق و با اجازه پدرتان و خودتان سواری کشی شما میشوم تا مرا به کشورم برسانید و پس از آن محبت شما را با شایستگی هر چه تمام‌تر جبران خواهم کرد. من خود را به این جوان معرفی نکردم زیرا اگر می گفتم من همان عجیب فرزند شاه هستم ممکن بود او بیش از پیش بترسد و زندگی او را تلخ کنم. چیزی نگفتم و تا توانستم از او پذیرایی کردم و مهربانی نشان دادم. شبها با هم دیگر به سر صحره غذا مینشستیم و تا دیر وقت از هر دری سخن می گفتیم و بعد به استراحت می پرداختیم. برای این جوان غذا میپختم و نهار و صبحانه و شام تهیه می کردم. به تمام منی او را سرگرم و خوشدون نگه می داشتم و آنی او را تنها نمی در طول زمان او هم به من دلبستگی پیدا کرد و قابلا نسبت به یکدیگر صمیمیت و دوستی استواری پیدا کردیم. من از آزوقه و خوردنی های او استفاده می‌کردم و او بیش از مدت پنجاه روز خوردنی و نوشیدنی داشت. دوستی ما روز به روز بیشتر قوت می‌گرفت و به او می می‌بینی حرف و سخن پیشگویان چقدر با حقیقت فاصله دارد؟ سرانجام چهل این روز رسید صبح آن روز جوان از خواب برخواست. با خوشحالی و شادی فراوان گفت شاه زاده خدا رو شکر که تا کنون خطری پیش نیامده ولی دیشب از بس خوشحال بودم که تا قنون به خیر گذشته است، دو هریجان بودم و اینک ای خوشحالم که امروز آخرین روز است و این ایام چهل روزه را با هم نشینی شما به خوشی به سرگرمی گذراندم. فردا طبق قرار قبلی پدرم با کشتی اینجا میآید که مرا به شهر خودمان برگرداند و اطمینان دارم پدرم برای سپاسگذاری از زحمات شما شما را با کشتی خود به دیارتان برمیگرداند. ولی از شما خواهش دارم آبی گرم کنید که من خود را شستشو کنم و بعد لباس های تازه برتر نمایم چون میخواهم پدرم که میآید در وضع کاملا مرتب و مناسبی باشم. من هم بلافاصله فاصله آب را رو روی آتش گذاشتم و وقتی جوش آمد آن را در گرمابه دستی ریختم و به جوان دادم. او هم به درون گرمابه دستی رفت و سپس من هم او را شستم و تمیز کردم. سپس از گرمابه درآمد لباس نو پوشید و برای استراحت به بستر رفت. پس از مدت کوتاهی از بستر خارج شد و از من خواست که برای او خربوزه و چاغویی حاضر کنم تا او قددی خربوزه بخورد و دهانش تازه شود. من یکی از بهترین خربوزه ها را انتخاب کردم و نزد او آوردم ولی چاقو را پیدا نکردم. او خودش گفت چاقو بالای سر من روی تاخچه است. من چاقو را در بالای تاخچه دیدم و با شتاب هرچه بیشتر به آن رفتم. دستم را دراز کردم و چاقو را در دست گرفتم اما در همین لحظه پایم روی ملافی بستر پیچید و بدبختانه روی جوان افتادم و چاقوی برهنه بر حسب اتفاق در قلب جوان نشست من که این صحنه دلخراش و ناراحت کننده را دیدم بسر بس خود کوفتم صورت و سینه خود را چنگ زدم و مجروح کردم و به خود روزگار ناسازه‌ و دشنام فرستادم خود را سرزنش می کردم که چرا مرتکب این شتاب زدگی و حماقت شدم که این همه پشیمانی به بار آورد مرگ خود را از خدا خواستم که ای کاش من به جای این جوان میمردم. اگر چند ساعت دیگر این جوان زنده مانده بود خطر از سر او گذشته بود و من احمق اگر دست به می زدم و متوجه این چند ساعت باقی مانده بودم این حادثه دلخراش و جگرسوز پیش نمی آمد من خود را قاتل این جوان می دانستم. با سخنانی که برای این جوان گفتم او را دلگرم ساخته بودم که با بودن من خطر به پایان رسیده و او هم سخنان مرا پذیرفته بود و خوشحال بود که در پناه من ایمن از گزند هر دشمنی است آه که چقدر دردناک است تحمل چنین مرگی آنگاه با قلبی لبریز از اندوه دستهای لنتی خود را که چاقو در آن تکیه کرده بود به سوی آسمان بلند کردم از بز پروردگار بزرگ خواستم که لغزشو بی دقتی مرا ببخشد و چنانچه مرا قاتل این جوان میشناسد در همان دم مرا از قید حیات سازد بعد از مرگ این جوان مردن برای من بهترین پاداش بود اما خواسته ما چه خوب و چه بد در سرنوشت زندگی خود و دیگران کمترین اثری ندارد من که دیگر نمیتوانستم زندگی را به این جوان بازگردانم و مدت چهل روز هم به سر آمده بود و پدر این جوان هم روی قرار قبلی باید امروز نزد فرزند خود بیاید و هر ممکن بود ورود او مرا کند فرار را برقرار ترجیح دادم و از آن خانی زیرزمینی خارج شدم دوباره تخت سنگ را بر روی دهانی آن گذاشتم و با خواب خاشاک آن را پوشاندم. همین که به راه افتادم ناگهان دیدم که کشتی پدر در کنار ساحل توقف کرده فهمیدم که پدر بیچاره برای بردن فرزند خود به اینجا آمده با خود گفتم به موقع از آن دهلیز زیر زمینی فرا کردم اگر پدر این جوان مرا در آن دهلیز زیر زمینی به هیچ طریقی ممکن نبود قبول کند که من قصد کشتن فرزندش را نداشتم و قطعا به دست غلامان خود مرا تکی تکی می کرد. به بالای درخت پرشاخ و برگی که در نزدیک همان دهلیز قرار داشت رفتم و از بالای شاخه های آن نگاه می‌کردم دیدم کشتی در همان محل قبلی ایستاد پدر و غلامانش از آن بیرون آمدند و به سوی خانی زمینی راه افتادند تا به آنجا رسیدند و دریچه را برداشتند و از پلکان پایین رفتند بعد از مدتی صدای شیون و گریه پدر به گوشم رسید مدتی گذشت تا پیرمرد از آنجا خارج شد و همچنان فریاد و فقانش به آسمان بلند بود و شیون می‌کرد و پیراهنش را از هم درید روی خاک افتاد و آنقدر آو... گریز تا از لفظ افتاد و بیهوش شد. پس از مدتی قلامان سیاه پوست جنازه جوان را از آن خانه زیرزمینی زمینی بیرون آوردند. انگاه گوری برای او درست در زیر همان درختی که من در بالای آن پنهان بودم کندند و او را با لباس در آن جای دادند. بعد بعد پدر را به هوش آوردند و او هم اولین مشت خاک را روی او ریخت. و سپس قلامان آن را با خاک انباشتند پس از انجام دفن فرزند، قلامان وسایل و لواز را که قبلا در اینجا آورده بودند به کشتی برگرداندند و زیر بغد پیر که قدرت راه رفتن نداشت گرفتند و کشان کشان به داخل کشتی بردند پس از مدت کوتاهی کشتی به راه افتاد و آرام آرام رفت تا از نظر ناپدید شد با رفتن کشتی از درخت به زیر آمدم و در جزیره به سفر خود ادامه دادم و مدت یک ماه تمام از نقطه‌ای به نقطه دیگر در حرکت بودم. تا اینکه دیدم آب دریا به تدریج کم می شود و دریا عقب ننشنی میکند و ساحل همچنان به سوی عمق دریا وسیعتر می شود. من هم در همین قسمت از ساحل به سفرم ادامه دادم و قودی آب فقط تا نیمی از پای من میرسید. همچنان روی ماسه و شنگام برمیاشتم. که از تو مشاهده کردم آتش بزرگی به رنگ نارنجی برافروخته و شاله های آن بسیار روشن و درخشان می نماید. دیدن این منظره من را امیدوار ساخت زیرا فکر کردم باید کسی آن آتش را رو برافروخته باشد و من در آنجا با آن شخص روبرو رو خواهم شد ولی به زودی به اشتباه خود پی بردم زیرا وقتی به چند قدمی آنجا رسیدم دیدم آتشی در کار نیست قصر مجللی است که سراسر از مثل قرمز ساخته شده است و چون خورشید در آن منعکس میشود بازتاب آن از دور به صورت شعله درخشان آتش خود را نمایان میسازد. من در برابر آن قصر زیبا ایستاده و با حیرت فراوان سازندگان آن را تحسین میکردم که ناگهان دیدم ده مرد جوان که در حال گردش بودند، و همراه پیر مرد با باوقاری به آنجا رسیدند و عجیب آنکه هر ده تن آنها از چشم راست نابینا بودند. همینطور که درباره علت این وضعیت مشغول فکر کردن بودم، آنها به نزدیک من رسیدند و از دیدن من بسیار خوشحال شدند و خوشامد گفتند و پرسیدند چگونه و چرا به این نقطه دورافتاده سفر کردم. من هم سرگذشت خود را برای آنان شرح دادم که همگی آنها در حیرت بسیار فرو رفتند. بعد مرا دعوت کردند که داخل قصر شوم. من هم قبول کردم و بعد از ورود به قش از چندین تالار و پیش اتاقی و خوابگاه های متعدد و اتاق‌های خلوت که همگی به زیباترین وجهی با اساسیه و لوازم زندگی گران قیمت آرای شده بود گذشتیم. و آخر سر به تالار بسیار وسیعی قدم گذاشتیم که در آنجا ده جایگاه آبی رنگ دیده می که حالت دایره داشتند و جدا از یکدیگر بودند که هنگام روز در آن مینشستند، و شبها در روی آن می خوابیدند و در وسط آن جایگاه ها جایگاه های دیگری بود که به همان رنگ ولی به برندی آنها نبود و پیر در آن جایگاه مینشست و ده مرد جوان هم در جایگاه های ای که گفتم می نشستند. جایگاه ها فقط محل نشستن برای یک نفر بود. بنابراین از من خواستند که من در روی فرش در کف تالار بنشینم. بدمنان خواهش کردند که درباره‌ی آنچه مربوط به من نیست و یا چرا و چگونه هر ده نفر آنها یک چشم ندارند پرسشی نکنم. نه هر که در آنجا میبینم به همان اکتفا کنم و کنجخاوی از خود نشان ندهم. مرد مسن پس از چند لحظه از جایگاه خود بلند شد و از تالار بیرون رفت. وقتی برگشت برای همه قضا آورده بود و سهم هر کدام را جداگانه داد و سهم مرا هم به من داد. وقتی همه ما از غذا خوردن فارغ شدیم، مرد موسین به هر کدام ما جامی از شربت داد. من هم بعد از شام مدتی به شرح سر خود پرداختم. بعد یکی از آن ده نفر که می دید پاسی از شب گذشته به مرد موسین گفت، انگام خواب فرامی رسد و باید برنامه شبانه را آغاز کنیم. پیرمرد از جای برخواست و به اتاقی که مجاور تالار بود رفت و بعد از مراجعت زفی روی سر خود می آورد. که با پارچه آبی رنگ پوشانیده شده بود. ده بار این رفت آمد تکرار شد. مرد مسن ظرف را با یک چراغ جلوی حریک از آن ده نفر روی زمین گذاشت. وقتی آنها پوشش ها را برداشتند، دیدند در هر کدام مقداري خاکستر، گرد زغال و دوده چراغ بود که آنها را با یکدیگر مخلوط کرده و به صورتهای خود میمالیدند، به نحوی که قیافه آنها بسیار ترسناک شد. پس از سیاه کردن صورتهایشان آنها شروع به نال زاری و گریستن کردند و بر سر سینه خود میزدند و دائما گرگ کنان میگفتند. این نتیجه تنبلی ماست. آنها این صحنه را تمام شب ادامه دادند و بعد از آنکه به پایان رسید مرد موسین برای آنها آب و که دست و روی خود را شستند و صورت خود را پاک کردند و لباسهایشان هم که آلوده به دوده و سیاهی شده بود عوض کردند. و لباس تازه پوشیدند به طوری که اصلا تصور نمیشد که اینها اقدام به چنین کار عجیب و غریبی کرده باشند بانوی بزرگوار شما خودتان قضاوت کنید در طول این مدتی که من ناظر اعمال این افراد بودم چقدر برایم دشوار بود که نمی‌توانستم حرفی بزنم زیرا اصرار کرده بودم کنتخاب نباشم و هیچ پرسشی درباره که میدیدم نکنم از فاحت کنجخواوی تقریباً نتوانستم شب را به راحتی بخوابم وقتی صبح از خواب بیدار شدم، به اتفاق آنها برای قدم زدن به بیرون قصد رفتیم. در طول راه به آنها گفتم: من با شما عهدی بستم، ولی اکنون می‌خواهم عهدم را بشکنم. زیرا شما دیشب عملی کردید که به نظر من کاملا غیرعادی بود، و از شما که افراد عاقل و فهمیده هستید، انتظار نمیرود به چنین رفتار غیرعاقلانه ای دست بزنید. علت این اعمال را شهر دهید. به علاوه چه اتفاقی افتاده که همه شما هر ده نفر چشم راست خود را از دست داده اید؟ پیش آمدی غیرعادی عادی آب آن شده. من بیش از این قادر به سکوت نیستم. آنها با شنیدن سخنان من، پاسخ دادند: ما توانیم در این باری به شما توضیحی بدهیم و این مسائل ارتباطی به شما ندارد. من هم با این ترتیب تمام ساعات روز را به گفته بود درباره مسائل گوناگون دیگر بانها گذراندم. تا آنکه شب فرارسید باز هم شام خوردیم و بعد از شام همان صحنه شب گذشته تکرار شد یکی دوست با به دیگر هم به همین ترتیب سپری گردید و من دیگر طاقت تحمل این صحنه عجیب و بیمانی را نداشتم و روز بعد سریحاً به آنها گفتم من میخواهم به سرزمین خود برگردم شما فقط به من بگویید از چه راهی باید بروم تا به کشور خود برسم شنیدن سخنان من یکی از آن ده نفر به من گفت شما نباید از دفتر ما خودت را ناراحت کنی ما از روی مهربانی و خیرخواهی از شما خواهش کردیم سکوت کنید برای آنکه نمیخواستیم آنچه بر سر ما آمده بر سر شما بیاید و در نتیجه آن چشم راست خود را از دست بدهید و گرفتار این اندوه دائمی شوید من تقاص او گفتم شما نگران من نباشید و اگر چنین برای من رخ دهد آن را از ناهی شما نخواهم دانست و هیچ مسئولیتی هی شما را نخواهد دید آن مرد بعد, بعد از اظهارات من گفت اگر شما چشم خود را از دست دادی چنانچه بخواهی بدن از ما برگردی ما تعداد من کافیست و دیگر محلی برای شما نخواهد بود من در گفتم: گفتم مطمئن باشید مزاحم شما نخواهم شد و آنچه که میخواهم ارضای حس کنچخاوی است که آسایش را از من به کلی سرب کرده است در این هنگام آنها که مرا مصمم دیدند گفتند بسیار خوب. آنها گوسفندی را سر بریدند، پوست آن را از بدن جدا کردند و چاقوی به من دادند و گفتند تو باید خود را در این پوست جای دهی و این چاقو را هم با خود همراه داشته باشی که بدن به آن نیاز خواهی داشت. ما پوست را می و تو در گوشه قرار می دهیم. آن وقت پرنده بزرگی که نامش را خست از آسمان به زمین می آید که گوسفندی را که روی زمین است بردارد و تومهی خود کند وقتی رخ گوسفندی را که تو در درونش هستی به آسمان ببرد نترس او تو را در روی قله کوهی میگذارد تا بخورد در این هنگام تو باید پوست را با این چاقو بشکافی و از آن خارج گردی همین که رخ تو را ببیند فرار میکند و تو باید بلا فاصله حرکت کنی از کوه پایین بیایی تا آنکه به قصر بسیار بزرگ و باشکوهی برسی وارد قصد می شوی و در آنجا تالارهای متعددی وجود دارد که هر کدام از نوعی جواهرم باشده است مانند زمار رود، تلا، سنگهای قیمتی و می توانی تا هر مدت که مایل باشی در آنجا بمانی بعدن خودت در همان قصد متوجه می شوی که باید چه قدم هایی برداری ما بیش از این به تو نمی بوییم. بقیه را خودت خواهی فهمید ولی در همان قصد بود که حس کنجخوابی ما برانگیخته شد و موجب شد هر کدام از ما چشم راستمان را از دست بدهیم و درطی این همه اندوه و توبه و پشیمانی گردیم تو خود شاهد پشیمانی و گلی هر شب ما بودی ای و این همان چیزی است که ما نمیخواستیم تا گرفتار شوی زیرا تَم این تجربه تلخ را ما چشیده ایم در آن قصر ماجراهایی وجود دارد که درباره آن باید کتاب ها نوشت حتی که سخنان آنها پایان گرفت من خود را در پوست گوسفندی که آنها برایم تهیه کردند جای دادم. چاقو را هم از آنها گرفتم و آنها پوست را دوختن و در محل مخصوص قرار دادند. طولی نکشید که همان پرنده مرا از زمین بلند کرد و احساس کردم که در روی زمین نیستم و در بین چنگال‌های نیرومند آن پرنده ام. بعد از مدتی احساس کردم مرا رو روی زمین گذاشت. چون با چاقو پوست را دریدم و بیرون آمدم. دیدم در بالای قله کوهی هستم و پرنده با دیدن من پراز کرده و دور شد. حاجت این پرنده به ای بود که میتواند فیل را از زمین بلند کند و به قله کوه ببرد تا در آنجا آن را تومه قرار دهد. من که صبر و قرار برای رسیدن به قصر نداشتم، وقت را تلف نکردم و با شتاب هرچه بیشتر به راه افتادم و تا نیمه ی روز راه رفتم تا این که به قصر رسیدم و قدم به درونش گذاشتم. قصدی بود بینهایت با شکو. به مراتب جالبتر از آنچه شنیده بودم وقتی که وارد قصد شدم اول وارد حیات چهارگوش وسیعی شدم که در اطراف آن نه در بزرگ برای ورود دیده میشد که از چوب، صندل و آبنوز ساخته شده بودند و... و یک در هم از طلای ناب بود این درها که تعدادشان به چهل می رسید همگی به مخازن جواهرات و سنگهای قیمتی و یا به باغ‌های زیبای بهشتی و یا به قصرهایی که اشیاء بی‌نظیر و کمیابی در آن جای داده بودند گشوده میشد. من چشمم به دری افتاد که در مقابل من گشوده بود. وقتی از آن عبور کردم به تالار پهناوری قدم گذاشتم که در آنجا چهل زن زیبا چون هوریان بهشتی در آنجا نشسته بودند. آنها به قدری زیبا و دلربا بودند که حتی تصور زیبایی فوق‌العادهی آنها در آنم خیال هم امکان پذیر نبود آنها لباس های زیبا و گرم‌بها برتن داشتند و همین که دیدند من به آنجا وارد شدم از جای برخاستند و به استقبال من آمدند و خوش آمد گفتند یکی از این بانوان در ربا از سوی همگی آنها با مهربانی و با ملایمت اظهار کرد ای مرد بزرگوار ما مدت‌هاست که در انتظار ورود نجیب‌زادی چون شما هستیم و شما از نظر ما کسی هستید که دارای پسندیده ترین صفات انسانی می باشید و دارنده این صفات نیکو همون کسی کسیست که ما آرزوی وصالش را داریم. زمنان امیدواریم که ما را شایسته هم صحبتی و هم نشینی خود بدانید. این مانوان زیبا و خوشرفتار من را وادار بنشستن بر روی جایگاهی کردند که از سایر جایگاهها بلندتر بود و هرچه خواستم آنجا ننشینم و مقابلت کردم فایده ای نبخشید و به من گفتند جای شما اینجاست زیرا در این لحظه شما سرور و صاحب اختیار و فرمانروای همه ما هستید و ما جملگی فرمان برداری شما خواهیم بود ای بانوی بزرگوار باید دخویم که در طول عمر خود بهترین ایام روزگاری بود که در حضور آن بانوان زیبا گذراندم و خوشترین و شگفتنگیز لحظات رحزات زندگیم دحثه هایی بود که از عشق و محبت آنها بهرهمند می شدم آنها همه نوع محبت علاقه و خدمت صادقانه را به من نشان دادند یکی از آنها با آب پاهایم را شستشو میداد و دیگری آب آغشته به مایعات خوشبو و معطر روی دستهایم میریخت و دیگران هر آنچه را اراده اراده میکردم بیریا در اختیارم میگذاشتند برایم هرنا خوردنی نوشیدنی ناب میآوردند و مرا با گرمی نوازش میکردند بعد از آن که بدین ترتیب مهرویان بهشتی با پذیرایی های جانانه خود خستگی و رنج سفر را از بدنم دور ساختند همه که دور من حلقه زدند و منتظر شنیدن شرح مسافرتم شدند من که در حالت سرخش و مستانی به سر می بردم خود را برای آنها شرح دادم و هر چهر بانوی با نهایت دقت به سخنان من گوش می دادند همین که سیاهی شب بر همین جسایی افکند یکی از بانوان که به من نزدیک بود از جایی خود برخاست و چراقها را روشن کرد. آنقدر شمدان های فراوان به تالار آوردند که از شدت نور تالار باننده روز روشن شد. سیما و پیکر موزنان آنها در زیر پتوی لرزان شم حالت زیبایی پرید آورده بود و من هم در میان این فرشتگان به سیر و سیاحت میپرداختم. چند از این بانوان مهبان هم میوه های خشک و سایر هایی که برای بادگساری مناسب بود روی میز میچیدند. روی میز جداگانه‌ای هم های شربت ناب و کهنه را جای داده بودند. در این هنگام چند تن از این بانوان زیبا با آلات موسیقی وارد تالار شدند، در کنار هم قرار گرفتند و آهنگ ساز و نقمه های آواز فضای تالار را سرشار از شادی و شور ساخت. من از هماهنگی ساز